فصل نهم. سرهنگ جرینلد مارکز اولین کسی بود که به پوچی جنگ پی برد او به عنوان رهبر نظامی و غیر نظامی ما کندو هفته دو بار از طریق تلگراف با سرهنگ آرلیان و در ارتباط بود در اوایل کار متن پیام‌های تلگرافی تلگرافی آندو سرنوشت و مسیر جنگ خونین را تعیین می کرد و باعث میشد در جزئیات آن به شناخت دقیقی برسند که در کدام نقطه قرار دارند و مسیر آتی آنها کجاست سرهنگ اورلیانو بوندیا هرگز به خودش اجازه نمی‌داد تا به ورطه خوشباوری کشیده شود حتی اگر توسط نزدیکترین دوستانش باشد در آن دوران او هنوز هم همان حجم صدایی را داشت که از آن طرف خط قابل تشخیص بود خیلی مواقع به عمد ارتباط را کش می‌داد و مکالمه را به صحبتهای خودمانی می کشند. رفته رفته جنگ شدت یافته و دوامنه آن گسترده شد. چهره او در خیالش به تدریج مبهمتر و غیر واقعی تر جلوه کرد و کلامش هم بیش از پیش آری از معنا شد. تا انجایی که مجموعه حرفهایش بی و ته و بی معنی بود. سرهنگ جرینلدو دو مارکز تنها به گوش کردن حرفها و دستورات او از آن سوی خط قانع بود بی اینکه خودش اظهار نظری بکند. بعد هم خود را به این قانه کرد که فقط به یک مکالمه تلگرافی با سرهنگ آرلیان و بو اندیا گوش میدهد. این مسئله تا حدی پیش پیشرفت که احساس کرد با مردی غریبه در آن سوی دنیا حرف میزند پس حرفهای خود را با این جمله تمام کرد. متوجه شد اما زنده با تزبه ازادی بدین طریق سرهنگ جرینلدو و مارکز به ارتباط خود با جنگ پایان داد کاری را که زمانی جزو فعالیت واقعی او محسوب می و از اهداف غیر قابل انکار دوران جوانیش بود حالا در کنج دور افتاده از خاطراتش جای گرفته بود یعنی یک پوچی مطلق تنها جایی که برایش باقی مانده بود تا به آنجا پناه ببرد اتاق خیاطی آمرانتا بود. هر روز بعد از ظهر با او دیدار میکرد و از تماشای دستهایش که با مهارت و ظرافت خاصی پارچه فاستونی را برای دوخت تا میکرد و زیر کفشک چرخ خیاطی قرار میداد لذت میبرد. رمدیوس خوشگله هم چرخ آن را با دستهای های ظریفش میچرخاند. ساعتها را به اینکه حرفی بزنند، کنار هم می و به هم جواری متقابلشان قانع بودند. آمارانتا در باطن خود از اینکه توانسته بود آتش عشق و وفاداری او را همچنان در وجودش روشن نگه دارد خوشنود بود. اما سرهنگ جرینلدو مارکز خود را در کشف اسرار درونی قلب این زن عاجز میدید. وقتی خبر بازگشت او به گوش آمارانتا رسید باعث تسلی خاطر و رفع نگرانیه شد وقتی در میان هیاهو و سر و صدای گارد شخصی سرهنگ آرلیان و قدم به خانه آنها گذاشت و وضعی جوریده و خاکالود داشت و با لباسهای آقشته به خون و با یک دست آویزان از گردن بوی عرق و گوسفند میداد در اثر فشارهای جنگ و دوری از وطن انگار به فراموشی دوچار و پیر و کریه شده بود امارانتا که او را دید بوهد زده شد و در دل گفت او خدای من این اون مردی نیست که رو میکشیدم. اما فردای آن روز وقتی او دوباره به خانه آنها آمد کاملا تغییر کرده بود این بار امارانتا او را با و تمیز و مرتب با صورتی اصلاح شده و با سبیل های تاب داده و روغن مالی شده و عطر زده دید او به اینکه دستش از گردنش آویزان باشد کتاب تا دعایی با نام مادر مروارید را در حالی که در کاغذ زرورق کادو پیچش کرده بود برای آمارانتا سوقات آورده بود آمارانتا در دل گفته بود مردا چقدر عجیب غریب و چون چیزی برای گفتن به خاطرش نرسیده بود ادامه داد و گفت از یه طرف همه عمرشونو با کشیشا مبارزه میکنن از طرف دیگه کتاب دعا ساباتی میارن سرهنگ جرینلدو مارکز بعد از این زمان و حتی در بحرانی ترین روزهای جنگ بدون استثناء هر روز بعد از ظهر را برای دیدن آمرانتا به خانه آنها آمده بود چند باری هم زمانی که رمدیوس خوشگل نبود به جای او دسته چرخ خیاطی را چرخانده بود امارانتا از دیدن آن همه وفاداری و از خودگذشتگی و با مشاهده تواضع آن مرد که برخلاف اعتبار و درجه نظامیش خود را آنقدر کوچک میکرد که دسته چرخ خیاطی را میچرخاند ناراحت میشد. او حتی موقع آمدن ابتدا اسیه کمری خود را در اتاق بغلی میگذاشت و بعد پیش آمرانتا میرفت. چهار سال متوالی به او ابراز قو و ارادت می کرد. اما امرانتا بی این که باعث آزردگی خاطر او بشود، همواره راهی برای رد تقاضای او پیدا میکرد. با آنکه موفق نشده بود او را عاشقانه دوست داشته باشد، اما دیگر قادر به زندگی بدون حضور او نبود. رمدیوس خوشگله که به نظر می رسید به چونین موضوعاتی بی است و طوری بار آمده که عقلش به این چیزها نمی انقدر بی احساس نبود که به آن هم از خودگذشتگی سرهنگ جرینلد و مارکز نسبت به آمارانتا و تبوت ها به او بی باشد. در این زمان بود که آمارانتا ناگهان متوجه شد دختری را که خودش بزرگ کرده و حالا تازه قدم به سن بلوغ گذاشته تبدیل به زیباترین دختر شده. آن هم نه تنها در میان خانواده بلکه حتی در کل ما در درون خود نسبت به او همان حسادتی را داشت که زمانی نسبت به ربکا حس میکرد. و این خاطر از خدا میخواست تا او را به وضعی دوچار نکند که آرزوی مرگ دختر برادرزادهاش را داشته باشد. اولین اقدامش معاف کردن و دور کردن او از اتاق خیاطی بود. تقریبا در همان زمانها بود که سرهنگ جرینلد مارکز نگرانی هایش را از پیامدهای جنگ بروز داد. او برای تقویت روحی سربازانش نیروهای ذخیره را احضار کرد و در این هین امید خود را به امرانتا از دست میداد چرا که بهترین سالهای عمرش را به پای او هدر داده بود و با همه کوششی که به عمل می آورد نمی توانست قلب و روح او را تسخیر کند امرانتا در بعد از ظهر یک از روزهای ماه آگوست تقاضای عاشق دلباختش را اینگونه پاسخ داد. بیا تا عبد از همدیگه دست بکشیم. حالا دیگه برای این کار خیلی پیر شدیم. بعد خود را در اتاقش زندانی کرد تا برای تنهایی و سرنوشت شوم خود تا دم مرگ اشک بریزد. آن روز بعد از ظهر سرهنگ جرینلدو و مارکز را برای مکالمه تلگرافی با سرهنگ آرلیان و فراخاندند، معلوم شد که باز هم از همان صحبت های معمولی سابق است و هیچ خبری از وقفه در آن جنگ فرسایشی نیست. در پایان مکالمه، سرهنگ جرینل مارکز نگاهی به خیابان خالی از جمعیت کرد، به قطره های کریستالگونه باران بر روی برگ درختان بادام هاشی خیابان نگاه انداخت و فهمید که در تنهایی انزوا غرق شده. و با ترخ کامی گفت آرلیانو توی ماکندو بارون میباره پس از آن برای لحظه طولانی مکسی به وجود آمد و به دنبال آن دستگاه تلگراف دوباره با صدای از کار افتاد و این کلمات روی نوار پدیدار شد شنینلدو چرا احمق شدی؟ واریدن بارون تو ماهو طبیعیه؟ این دو افسر ارشد برای مدتی طولانی همدیگر را ندیده بودند. در نتیجه سرهنگ جرینلدو از دریافت این پاسخ دلخور شد. دو ماه بعد، زمانی که سرهنگ آرلیان و بو به ماکندو برگشت، آن دلخوری جای خود را به نوعی بهت زدگی داد. چرا که این بار او برخلاف دفعات قبل، خیلی بی سر و صدا و بدون گارد شخصی در حالی که برخلاف گرمای هوا، خودش را در ردای پیچیده بود آمد. حتی اورسولا هم از آن همه تغییر تعجب کرد. این بار او سه زن را که معشوقههایش بودند همراه آورده بود. اورسلا هر سه نفرشان را در یک خانه اسکان داد. سرهنگ بوئندیا اکثر اوقات خود را در حالی که روی گهواره سفریش دراز کشیده بود در خانه سپری میکرد. به ندرت تلگراف های, گزارش های روزمره را میخواند. در یک مورد وقتی سرهنگ جرینلدو مارکز از او درخواست کرد تا دستور تخلیه یکی از نقاط مرزی را به این دلیل که آنجا در صورت درگیری تبدیل به مناقشه بین المللی خواهد شد صادر کند، با لحن تندی به او گفت: «با همچین شرندیاتی مزاحم من نشو برای مشفرات بر سراغ خداوند. آن روزها شاید پیچیده ترین لحظات جنگ بود مالکین آزادی که اوایل از اهداف انقلاب پشتیبانی می‌کردند، حالا در خفا با مالکین محافظ کار به توافق رسیده بودند تا جلوی انقلاب اصلاحات عرضی را بگیرند مخالفان سیاسی تبعیدی هم که حزینه های جنگ سرهنگ آرلیانو را از خارج تأمین می‌کردند، حالا به طور قاتعانه اهداف سرهنگ آران و بندار را رد می کردند. از دست دادن این پشتیبان های قوی انگار تأثیری روی او نداشت و باعث آزردگی خاطرش نمیشد. شعرهایش که حالا بیش از پنج جلد شده بودند ته صندوق مانده و از خاطرها رفته بودند. آخر شب یا پیش از خواب ظهر یکی از معشوق را به گهواری سفری خود میخواند و بعد از خواباندن شهوت حیوانیش مثل سنگ میافتاد و میخوابید بی این که کوچکترین نگرانی در درباره جنگ از خود بروز بده. تنها خودش میدانست که قلب سرگردانش برای ابد محکوم به تردید و سردرگمی است اوایل که در اثر شکوه استقبال از بازگشت و پیروزی های شگفت سرمست میشد به پرتگاه عظمت خود نگاهی میانداخت. با لذت و احترام دوک مالبرو را که در فنون جنگاوری آموزگارش بود سمت راست خود می نشند. دوک مالبرو با آن لباس پوست و چنگال پلنگ احترام کوچک و بزرگ را نسبت به خود برمیانگیخت. در همین روزها بود که تصمیم گرفت نگذارد هیچ بشری از جمله ارسولا به سه قدمیش نزدیک شود. در هر جو که بود، وسط دایره ای به قدر 6 متر قرار می گرفت که محافظانش با گچ به روی زمین می و فقط او اجازه داشت وارد آنجا شود. با جملات قصار دستوراتی صادر می کرد که نشان میداد به سرنوشت دنیا کوچکترین اعتناعی ندارد. پس از تیرباران ژنرال منکادا و در اولین سفر خود به شهر مناور تصمیم گرفت به قولی که به او داده بود وفا کند. به خانه همسر او رفت و امانت را که شامل عینک، مدال، ساعت جیبی و انگشتر ازدواج بود، تحویل بیوش داد. آن زن هم با متانت آنها را از میان در نیمه باز تحویل گرفت ولی به او اجازه ورود به خانهش را نداد و گفت سرهن، شما اجازه ورود به این خونه را ندارین. شما توی جنگاتون اختیار تام دارین اما توی این خونه من دستور میدم. او پس از شنیدن این اهانت خونسرد مانده بود اما قلیان درونیش موقعی آرام گرفت که گارد محافظه او خانه آن بیوه را قارت و با خاک یکسان کردند. اگر سرهنگ جرینلدو مارکز در آنجا حضور داشت حتما به او می گفت آریانا مواظب قلبت باش تو زنده زنده در حال گندیدنی؟ در همان زمان بود که او برای دومین بار فرماندهان نیروهای انقلابی را برای گرد همایی احزار کرد در میان آنها به هر نوع آدمی برخورد از ایدالیست گرفته تا جاه طلب، از ماجراجوی بدون عاطفه تا آدمهایی که جامعه و مردم متنفر بودند و حتی جنایتکاران و ولگردها در بینشان یکی از اعضای فعال حزب محافظه کار هم دیده می شود. او به این دلیل به انقلابیون پیوسته بود تا از خطر محاکمه به خاطر حیف و میل بودجه در امان بماند. بسیاری از آنها نمیدانستند برای چه کسی و به خاطر چه چیزی میجنگند. در میان آن آدم های رنگ و رنگ که تفاوت ارزش‌ها و اختلاف طبقاتیشان می میتوانست باعث یک انفجار داخلی شود، صاحب قدرتی با نفوذ وجود داشت که شاخصتر از بقیه جلوه میکرد. او جنرال توفیل و وارگاس نام داشت، سرخ اصیل و در عین حال وحشی و بی سواد. او در حیله های جنگی موزیانه بسیار ماهر بود و نوعی سکوت و حالت روحانی در خود داشت که باعث می شد افرادش در حد جنون به او وفادار باشند. سرهنگ آورلیان و بو این گرد همائی فرماندهان آشوبگر را به منظور تحکیم وحدت و در جهت مقابله با ترفندهای سیاستمداران برگزار کرده بود. ژنرال توفیل وارگاس هم برای اجرای مقاصد خود به این جمع پیوسته بود. او در عرض چند ساعت ائتلاف به وجود آمده در میان بهترین فرماندهان را در هم کوبید و خودش فرماندهی کل قوای مرکزی را به دست گرفت. سرهنگ اولیون بوئندیا با دیدن آن وضع به افسران خود توصیه کرد باید مراقب این حیوان وحشی بود. اون حتی از خود وزیر جنگم خطرناکتره. در این موقع یکی از افسران جوان او که به بزدلی و کمرویی معروف بود، انگشت خود را به معنای اعلام خطر بلند کرد و پیشنهادی داد. جناب سرنگ، خونسا کردن خطرات این مرد خیلی ساده است. باید اونو کشت؟ سرهنگ اورلیانو و بو از لحن خونسردانی او در آن اظهار نظرش شکه نشد اما از حرف او ناراحت شد چرا که لحظه قبلتر همان فکر به ذهن خودش هم خطور کرده بود چند ثانی بعد گفت از من انتظار نداشته باشین که همچین دستوری سادر کنم همینطور هم بود او چون این دستوری سادر نکرد اما هنوز دو هفته نگذشته بود که ژنرال توفیل و وارگاس در یک حمله همه‌جانبه با ساتور سلاخی شد. سرهنگ آورلیانو بوئندیا فرماندهی کل قوا را به عهده گرفت. همان شب وقتی از سوی همه فرماندهان آشوبگر به عنوان فرمانده کل شناخته شد، ناگهان با ترس و لرز از خواب پرید و یک پتو خواست. از چند ماه پیشتر او گرفتار نوع احساس سرمایه درونی شده بود. طوری که حتی زیر تابش پرحرارت آفتاب هم استخوانهایش از سرما می لرزید و نمیتوانست بخوابد تا اینکه رفته رفته به آن عادت کرد. از سوی دیگر، سرمستی قدرت در او در اثر امواج عذاب به تدریج زایل شد. در جستجوی راه درمانی برای ها و سرمای درونش بود که دستور داد سروان جوانی را که معتقد به قتل تاوفیلو وارگاس بود تیر باران کنند دستورات او به سرعت باد اجرا میشد حتی پیش از که صادر شوند یا قبل از که به ذهن او آمده باشند و به مراتب قاطع تر و خشنتر از آنچه دستور داده بود سرهنگ آرلیان بواندیا در تنهایی و در قدرت بی به تدریج رهبری قوای زیر فرمانش را از دست داد صدای هورای مردم روستاهای اطراف او را ناراحت می کرد. چرا که فکر می کرد که آنها کسانی هستند که زمانی برای دشمنان او هورا می کشیدند هر جا می رفت با نگاه پسران جوانی مواجه می شد که انگار با چشمان خودش به او نگاه می کردند. یا با صدای خود او با او حرف می زدند. یا با همان شک و تردیلی به او احترام می گذاشتند که خودش نسبت به آنها می گذاشت. همه آنها ادعا می کردند که پسران او هستند احساس می کرد تکثیر شده و تصویرش مدام تکرار می شود و در عین حال تنها تر از همیشه است برایش مسلم شده بود که حتی افسران زیر دستش هم به او دروغ می گویند. با دوک ماربرو دعوایش شد و به او گفت بهترین دوست کسیه که تازه مرده باشه از تردیدهایش و از دایره آن جنگ دائمی و خشن که در آن هر بار خود را پیرتر و تحلیل رفته میدید جانش به لب رسیده بود. نمیدانست چطور یا حتی از چه موقع به این وزن گرفتار شده. همیشه دست کم یک نفر در خارج از دایره گچی اطراف او حضور داشت. کسی که احتیاج به پول داشت یا پسرش که دوچار سیاه سرفه شده بود یا کسی که میخواست اجازه بگیرد تا برود و برای همیشه بخوابد چرا که دیگر تاب به تحمل مزه قیاور جنگ را نداشت یا کسی بود که در مقابل او خبردار ایستاده بود تا آخرین گزارش ها را به گوشش برساند و بگوید دراب سره هنگ و این مطلب در اکثر موارد موقعی به او گزارش میشد که خشنترین مراحل جنگ بیپایان در حال رخ دادن بود اما هرگز اتفاقی نمیافتاد در نتیجه خود را در اثر پیش های خودش تنها و رها شده و گرفتار در سرمایه درونیاش حس میکرد که انگار تا لحظه مرگ او را رها نخواهد کرد به عنوان آخرین پناهگاه به آغوش خاطرات قدیمیش در ماکوندو پناه آورده بود حالا سستی و بیحالیش آنقدر شدید و جدید بود که وقتی از سوی حزب به او ابلاغ شد کمیسیونی متشکل از اعضای بلند پایه خواهد شد تا در باره سرنوشت جنگ تصمیم بگیرند روی گهواره سفریش بی این که کاملا از خواب و سستی بیرون آمده باشد قلتی زده و از این دنده به آن دنده شد و با لحن خوابالودی گفت اونا رو ببرید پیش فایش اعضای کمیسیون از شش نفر قاضی بلند پایه تشکیل شده بود که با آن فرک های بلند و کلاهای لبهدارشان گرمای طاقت فرسای نوام رمکندو را با متانت خاصی تحمل می کردند. آنها را در خانه خودش پذیرفت. بیشتر روز را مانند زاهدها در کنفرانسی که در یکی از اتاقخوابها تشکیل می شد سپری می کردند. غروب که می شد؟ تغاظه یک راهنما و تعدادی نوازنده آکاردون را داشتند و به همراه آنها به میکده کاتارینا میرفتند و آنجا را غرق میکردند سرهنگ آرلیان بوئندیا با شنیدن این خبر دستور داد آزادشون بذارید و کاری به کارشون نداشته باشید من میدونم اونا دنبال چی هستن در آغاز ماه دسامبر مذاکره که مدتها در انتظارش بودند و خیلیها ها پیش بینی می کردند که مذاکره طولانی خواهد بود در کمتر از یک ساعت به نتیجه قطعی رسید. سرهنگ اورلیانو بوئندیا در هوای داغ پذیرایی خانه این بار کنار پیانوی پوشیده از ملافه سفید قرار داشت. در مرکز آن دایره گچی که اطرافیانش برایش کشیده بودند ننشست. و در حالی که خود را لای پتو پیچیده بود کنار مشاوران خودش نشسته بود و در سکوت به سخنان کوتاه و نظرات نمایندگان حزب آزادی خواه گوش می‌داد. آنها پیش از هر چیز از او می‌خواستند که به منظور جلب حمایت آزادی خواهان ملاک آین نامی حق مالکیت را اعلام کند. در مرحله دوم هم خواستند تا علیه کشیشان پیرو مذهب پروتستان اعلام جنگ کند تا از حمایت همه جانبه کاتولیک ها برخوردار شوند. در نهایت از او تقاضا کردند برابری حقوق فرزندان مشروع و نامشروع را لغو کند تا خانواده ها از بلا تکلیفی در بیایند. درخواستای آنها تمام که شد، سرهنگ آردیان و بو لبخندی زد و گفت <تصفيق> این یعنی اینکه که جنگیدنمون به خاطر کسب قدرت بوده و بقیه چیزام بهونه است یکی از مشاورین گفت به این اقدامات اصلاحی تغییر تاکتیک میگن در حال حاضر چیزی که بیشتر اهمیت داره اینه که پایه های مردمی جنگ و گستردهتر کنیم بعد از اونه که میفهمیم چیکار میتونیم بکنیم در این لحظه یکی از مشاوران سیاسی سرهنگ اورلیان و بوئندیا وارد بحث شد و گفت اینو نو حرف زدن یه جور ضد و نقیز گویه اگه اینو اصلاحات مفیده پس نشون میده که رژیم کار رژیم خوبیه اگه بخوایم از پایههای مردمی علیهشون استفاده کنیم معنیش اینه که رژیم از حمایت مردمی برخورداره طور خلاصه حرف شما این معنی رو میده که ما تقریباً 20 ساله که داریم علیه اهداف ملت میجنگیم او میخواست طور به صحبت خود ادامه دهد که سرهنگ اورلیان و با, با حرکت دست به سکوت وادارش کرد و گفت اه دکتر وقت خودتو بی خودی تلف نکن مهمترین چیز اینه که از حالا به بعد ما فقط به خاطر کسب قدرت میجنگیم بعد در حالی که هنوز هم لبخند به لب داشت و اسنادی که نمایندگان پیش رویش گذاشته بودند نگاهی انداخت و در حالی که آماده امضا کردن میشد گفت از اونجایی که اینجور جور کارا همیشه به همین شکل انجام میشده پس ما هم اعتراضی نداریم اطرافیانش با شنیدن حرف او نگاهی به هم انداختند و از میان آنها سرهنگ جرینلدو مارکز با لحن گفت، من می گفت معذرت میخوام جناب سرهنگ اما این کار یه جور خیانت محسوب میشه. سرهنگ آرلیانو بوئندیا در حالی که قلم به دست آماده امضای اسناد بود قلم را در هوا نگه داشت و با تمام قدرت خشم خود را بر سر او خالی کرد و دستور داد اصلا تو تحفیل بده سرهنگ جرینلدو مارکز با احترام از جای خود بلند شد. اصلحهٔ کمریش را باز کرد و در مقابل او به روی زمین گذاشت سرهنگ اورلیان بوهندیا دوباره به دستور داد همین حالا خودتو به پادگان معرفی می کنی و در اختیار دادگاه انقلاب قرار میدی بعد آن اسناد را امضا کرد و به دست نمایندگان داد و گفت بفرمایید آقایون اسناد اصلاحی شما امیدوارم از قبلشون نفعی عایدتون بشه. دو روز بعد، سرهنگ جرینلدو مارکز به اتهام خیانت به های انقلاب به اعدام محکوم شد. سرهنگ آرلیان و بوئندیا در حالی که روی گهواری سفریش دراز کشیده بود، به های تقاضای اف او بی‌اتنا ماند تا اینکه شب جای حکم، برخلاف دستور او که کسی نباید مزاحمش شود، اورسولا وارد اتاق به او شد و در حالی که کماکان لباس مشکی به تن داشت و گیافه عبوسی به خود گرفته بود سه دقیقه سر ایستاد و متانت خود را حفظ کرد و با لحن ملایمی به او گفت میدونم که جرینلدو رو تیر بارون میکنی و منم نمیتونم جلوتو بگیرم اما بهت اختار میدم به خونه های پدر و مادرم قسم میخورم به روح خوز آرکادیو با قسم میخورم به خداوند قسم میخورم به محض اینکه چشمم به جسدش بیفته هر کجا که باشی پیدات میکنم و با دسته خودم میکشمت و بعد بی اینکه منتظر واکنش او بماند و قبل از خارج شدن از اتاق گفت با این کارایی که میکنی برام مثل اینه که با دم خوک به دنیا آمده باشی در آن شب پایان نیافتنی دو مارکز به بعد از ظهر هایی فکر میکرد که در اتاق خیاطی آمرانتا عمر خود را به پای او هدر داده بود. سرهنگ آرلییان و بندیا در گهواره سفریش مرتب از این دنده به آن دنده میشد و بدنش را خارند و به تنهایی خودش فکر میکرد. و تلاش میکرد تا از آن تنگنا خلاص شود. لحظات شادی بخش زندگیش تنها همان بعد از ظهر خیلی دوری بود که پدرش دست او را گرفته و برای دیدن یخ برده بود و روزهایی که در کارگاهش ماهی های میساخت. می انگار مجبور شده بود سی و دو جنگ خونین راه بیاندازد و عهد و پیمانهای خود را با مرگ و نیستی مانند خوکی که در لجن می زیر پا بگذارد تا بعد چهل سال، تازه به اهمیت ساده زیستی پی ببرد در سپیده صبح در حالی که از بیخوابی شب گذشته در عذاب بود، تقریبا یک ساعت به زمان اجرای حکم ادامه مانده بود که وارد سلول سرحنگ جرینلدو مارکز شد و به او گفت: دوست قدیمی من، نمایش مسخره تموم شد. بیا قبل از اینکه پشوات رو اعدام کنن و از اینجا بریم. اما سرهنگ جرینلدو مارکز که نمیتوانست نفرت و انزجار خود را از اقدامات نسنجیده او مخفی کند جواب داد. نه آرلیانو. ترجیح میدم بمیرم اما تو رو یه حاکم مستبد و ستمگر نبینم. سرهنگ آرلیانو گفت. دیگه نه میبینی. باشو. باشو کفشاتو پات کن و کمکم کن تا این جنگ و تمومش کنیم. او این حرف را در حالی زد که نمیدانست پایان دادن به جنگ به مراتب مشکلتر از آغاز کردن آن است. تقریبا یک سال طول کشید تا با هزار مکافات توانست دولت مرکزی را وادار به امضای قطعناه صلح به نفع نیروهای آشوبگر کند. یک سال دیگر را هم صرف راضی کردن انقلابیون به پذیرش قطع کرد. باز هم با هزار سختی توانست جلوی آشوب افسران خودش را که در مقابل متارکه جنگ و اقدامات صلحآمیز او به شدت ایستادگی می و می خواستن جنگ را تا پیروزی کامل ادامه دهند بگیرد تا جایی که برای بزانو درآوردن آنها به قوای دشمن متوسل شد تا آن زمان هرگز بان خوبی و عظمت نجنگیده بود حالا جنگیدن برایش معنا داشت بعد از آن همه نبرد برای هیچ حالا برای آزادی خودش می جنگید و از این بابت شوق زیادی در خود احساس میکرد. سرهنگ جرینلدو با همون صبات و قاطعیتی که برای پیروزی در جنگ داشت حالا باید برای شکست میجنگید. در تصمیم خودش راسخ بود. اورلیانو او را به خاطر آن همه ابراز رشادت به خاطر هیچ و پوچ سرزنش می کرد. لبخند میزد و میگفت نههران نباش مردن از اون چیزی که تصور می کنی سخت تره. در مورد خودش که این چنین بود قطعی بودن زمان مرگش باعث می شد یک نوع امنیت اسرارآمیز در او پدید بیاید نوع جاودانگی که به او در مقابل خطرات جنگ صونیت میداد و در پایان این فرصت را در اختیارش میگذاشت تا شکستی را پذیرا شود که به مراتب مشکل و خونین و پرحزینه تر از پیروزی بود در طول حدود بیست سال جنگ سرهنگ آرلیان و بو اغلب دور از خانه به سر برده بود آن موقعیت های استراری که هر بار موجب می تا او به خانهش برگردد یا آن محافظین که همیشه و همه جا او را همراهی می کردند، یا حاله اسرارآمیزی که هر جا که حضور داشت آنجا را نورانی می کرد که حتی ارسلا هم از آن باخبر بود همه و همه در نهایت او را به یک بیگانه تبدیل کرده بودند آخرین باری که به ماکندو برگشت و خانهای برای اقامت سه معشوقش اجاره کرده بود تنها دو بار در خانه خودشان دیده شد آن هم برای اینکه به شام دعوتش کرده بودند رمدیوس خوشگله و دغولوها به زحمت او را می شنختند. اماران تا هم نمیتوانست او را با تصویر مبهم برادرش تطبیق دهد. برادری که در گذشته ها اوقات خود را در درون کارگاهش با ساختن ماهیهای طلایی کوچک سپری میکرد، کسی که حالا تبدیل به جنگجوی افسانه ای شده بود و هر کجا که می رفت فاصله سمتری میان خودش و دیگران به وجود می آورد. زمانی که پایان جنگ قطعی شد، اعضای خانوادش فکر کردند او به صورت انسانی تغییر یافته باز خواهد گشت و دوباره قلب های آنها را تسخیر خواهد کرد. عواطف خانوادگی آنها که در طول آن همه سال از محبت او بیبهره مانده بودند، این بار از قبل بیدار شده بود. ارسلا گفت بلاخره بعد از مدتهای مرد توی خونه داریم اما آمارانتا اولین کسی بود که فهمید او را برای همیشه از دست دادند یک هفته قبل از اعلام مترکه رسمی جنگ او بدون حضور محافظان خود وارد خانه شد فقط دو سرباز پابرهنه به دنبالش بودند که لوازم شخصی و جعبه کتابهای شعرش را که از آن همه دبدبه و کبکبه شاهانش باقی مانده بود از پشت قاطر پیاده کردند و به ایوان بردند وقتی از جلوی اتاق خیاطی آمارانتا عبور کرد آمارانتا او را صدا زد اما سرهنگ آورلیان و به زحمت توانست صدای خواهرش را تشخیص بدهد. آمارانتا که از بازگشت او خوشحال بود با مهربانی گفت منم آمارانتا بعد دست باند پیچیده شده را به او نشان داد و گفت ببین سرهنگ آرلیان و همان لبخندی را به او زد که صبح یکی از روزهای خیلی دور که به اعدام محکوم شده بود و به ما کندو برگشته بود زده بود به امرانتا گفت چقدر هلناک زمان خیلی سری میگذره حالا این ارتش رژیم محافظ کار بود که از خانه او محافظت می چرا که در میانه هیاهو و مردمی که او را متهم می برگشته بود آنها معتقد بودند که او جنگ را در آخرین لحظات به این دلیل شدت بخشیده تا آن را به بهای بیشتری بفروشد در حالی که او در تبالرز شدیدی به سر می و زیر بغلهایش دوباره زخم شده بود ورسولا شش ماه قبلتر تر وقتی که خبر متارکه جنگ را شنید در اتاق ها را که بوی نم گرفته بود باز کرد تا هوای اتاقها عوض شود در گوشه و کنار خانه اسفند دود کرد تا خانه آماده پذیرایی از او باشد این کارها را با این خیال انجام میداد داد که او این بار می آید و تا پایان عمر با آنها زندگی می کند آن هم بدون هیچ حادثه ای و در خاطرات گذشته و در کنار عروسک های او در طول دو سال گذشته قرزی را که به مرگ داشت که شامل پیر شدن هم می شد پرداخته بود وقتی از مقابل کارگاهش که ارسلا با شوق برایش آماده کرده بود گذشت متوجه کلید روی در نشد حتی متوجه ویرانی های زریفی که در طول گذر زمان در جای جای خانه به وجود آمده بود نشد انهدامی تدریجی که برای مردی که میخواست خاطرات گذشتش را زنده نگه دارد فاجعه محسوب می شد از دیدن پوست پوست شدن گش دیوارها و کثیفی آنها از دیدن تارن کبوتها در گوشه و کنار اتاقها یا از دیدن تیرکهای سقف که رد موریانه ها آنها مانده بود یا از گرد و خاک نشسته بر گلهای بگنیا و زنگ زدگی لولاهای در و ها از دیدن هیچ کدام دلش به درد نیامد او خودش را لای پتو پیچید چکمه به پا روی ایوان نشست و سراسر بعد از ظهر آنجا ماند انگار که انتظار قطع شدن باران و صاف شدن هوا را میکشید و به ریزش قطرات باران روی گلهای بگنیا نگاه میکرد. تازه در این لحظه بود که اورسلا فهمید این تنها جسم اوست که در خانه حضور دارد. با خود گفت اگه جنگ مشغله فکریون نباشه، حتما داره به مرگ فکر میکنه. این فکر برایش آنقدر غانه کننده بود که آن را یک پیشگویی تلقی کرد. آن شب سر میز شام، پسری که آرلیان سگوندو نامگذاری شده بود، نان را با دست راست خود گرفت و سوپش را با دست چپ خورد. برادر دوقلویش همان که خزار کادی و سگندو نام داشت، برعکس او نان را با دست چپ گرفت و سوپ را با دست راستش خورد. حرکت دست های آن دو چنان با هم هماهنگ بود که نشان نمیداد دو برادر دوقلو در مقابل هم نشستند و شام میخورند. بلکه انگار یکی از آنها، جلوی آینه نشسته بود این دو برادر به دلیل شباهت بی که به هم داشتند آن نمایش جالب را به فخار مهمان تازه وارد اجرا کردند اما سرهنگ اورلیانو و بو حواسش انقدر پریشان بود که متوجه آن دو نشد به حدی به همه چیز بی توجه بود که حتی وقتی رمدیوس خوشگله را که لخت از مقابلش عبور کرد تا به اتاق خودش برود ندید در این میان فقط اورسولا بود که جرأت کرد خلوت او را بشکند او وسط شام گفت: «اگه قرار باشد دوباره از این بری حداقل نگاهی به دوربرت بنداز تا امشب تو خاطرت بمونه سرهنگ آرلیان و بو اندیا بی این که متعجب شود فهمید که در طول این همه سال رسلا تنها کسی است که توانسته. به دنیای بدبختی های او نفوذ کند پس از سالها به صورت او دقیق شد و دید که پوستش مانند چرم شده و دندانهایش را کرم خورده موهایش رنگ باخته و سفید شده و نگاه وحشت زده ای دارد ارسلا را با ای که آخرین بار از او بیاد داشت مقایسه کرد آخرین بار آن روزی بود که در آشپسخانه نشسته بود و پیشبینی کرده بود که قابلمه در حال جوش از روی میز سرنگون خواهد شد حالا اورسولا را مانند آن قابلمه در حال سرنگونی و خورد شدن میدید. پوست بدنش را دید که در اثر شرایط باد زندگی خراش هایی بران افتاده بود و جای زخم های ای بر پوستش باقی بود احساس کرد آن خراش ها و زخم ها دلش را به رحم نمی آورد. تلاش کرد تا مهر و ای در جایی از قلب پوسیدش پیدا کند اما چیزی نیافت سالها قبل تر حضور بوی پوست ارسلا را بر پوست خودش که احساس می کرد دوچار نوعی شرم می شد و از تماس فکرهای او با فکرهای خودش متحصر می گشت. اما همین احساسات هم در اثر جنگ از بین رفته بود حتی تصویر و خاطره همسرش رمدیوس را به حدی تار و مبهم به یاد می آورد که گویی او دخترش بوده نه همسرش. زنان بیشماری که در وادی عشق بر سر راه او قرار گرفته بودند و از طریق آنها در سراسر ساحل مانند ماهی تخم کرده بود هیچ رد پایی در احساسات او بر جای نگذاشته بودند. آنها اغلب بعد از تاریک شدن هوا به چادر او خزیده و قبل از صبح هم رفته بودند و فردای آن شب خاطری از آنها بر جای نمانده بود مگر در خستگی جسمی و بیخابیش تنها علاقش به خوز آرکادیوی دوم بود که در مقابل گذر زمان مقاومت کرده بود علاقهی در دوران کودکی که آن هم به خاطر مهر و محبت نبود بلکه دلیلش همدستی در بازی و اقداماتشان بود. حالا در مقابل سؤال ارسولا تفره رفت و گفت متاسفم. جنگ همه چیز نابود کرده. در روزهای بعد خود را با از بین بردن ردپاهایش در سراسر دنیا مشغول کرد و کارگاهش را از همه چیز خالی کرد. طوری که فقط لوازم غیر شخصیش را باقی گذاشت. لباسهایش را به سربازان بخشید. بعد سلاح‌های خود را در حیات خانه چال کرد. درست همان گونه که سالها قبل پدرش با احساس ندامتی که از قتل پرودنسی و آگویلار خروس بازداشت نیزه را را آنجا دفر کرده بود. فقط تپانچه را با یک فشنگ برای خود نگه داشت. اورسولا در این کارهای او مداخله نکرد مگر یک بار آن هم زمانی که می‌خواست عکس همسرش رمدیوس را که با نوری جاویدان روشن بود از بین ببرد اورسولا به او گفت این عکس از خیلی وقت پیش دیگه فقط به تو تعلق نداره بلکه یادگار خونوادگیه در آن شب اعلام مترکه جنگ وقتی که لوازم شخصی خود را از بین برد و دیگر چیزی باقی نماند تا یادآور خاطرات او باشد جعبه کاغذ های اشعارش را به کنار تنور نانپزی سانتوسوفیا سفیه دلا داد کشند. او داشت آماده پختن نان میشد که سرهنگ آرلیان و با اندیا اولین لوله کاغذ های زرد شده را به دستش داد و گفت: « بیا با این تنور رو روشن کن کهنست و راحتتر میسوزه اما سانتا دلا دللا داد که هموار ساکت و متواضع بود و هرگز با کسی حتی بچه هایش مخالفت نمی کرد با دیدن کاغذ ها احساس کرد که این کار کار درستی نیست به او گفت اینا کاغذ های مهمی سرهنگ آرلیان بوئندیا گفت نه اصلا اینا چیز که هر کسی برای خودش می نویسه او هم در جواب گفت پس در این صورت خودتون بسوزونیدشون. سرهنگ آرلیان و بو نه تنها این کار را کرد بلکه جعبه را هم با ساتور تکه تکه کرد و قطعات خرد شده آن را به خورده آتش تنور داد. چند ساعت پیشتر پیلار ترنرا برای دیدن او آمده بود و سرهنگ آرلیان و هم پس از سپری شدن آن همه سال وقتی دید که چقدر پیر و شکسته و چاق شده و دیگر از شلیک خنده های او خبری نیست بت زده شد. به خصوص، وقتی که فهمید در فال ورق گرفتن و پیشگویی کردن متبهرتر شده. چرا که بعد از گرفتن فال او گفت مراقب دهنت باش. سرهنگ آرلییان و بو اندیا با شنیدن این پیشگویی یادش آمد که او این حرف را یک بار دیگر هم در زمانی که در اوج قدرت و افتخار بود از او شنیده بود. اما در آن زمان پیشگوی سرنوشتش به نتیجه نرسیده بود. کمی بعد زمانی که پزشک شخصیش روی زخم های زیر بغلش مرهم و آن را بست به اینکه علاقه خاصی از خود نشان دهد از او خواست تا محل دقیق قلب را نشانش دهد. دکتر هم با گوشی به صدای قلب او گوش داد و با تک پنبه ای که به محلول یود آغشته بود دایرهای روی سینه ای او رسم کرد. سشنبه اول بعد از متارکه جنگ با گرمای هوا و ریزش باران آغاز شد. سرهنگ آرلیان و بو قبل از ساعت پنج سر میز آشپزخانه نشست و طبق معمول قهوه بدون شکر خود را نوشید. رسلا به او گفت تو توی همچین روزی به دنیا آمدی هممون از دیدن چشمای باز ترسیده بودیم اما او به گفته اورسلا اهمیتی نداد چرا که همه حواسش به صدای قدم های نظامی و صدای شیپور و صدای دستورات نظامی بود که آرامش صبح را بر هم میزد. طوری که انگار پس از چندین سال جنگ هنوز هم برایش تازگی داشتند همان حس سستی زانوها و مور مور شدن پوست بدنش به او دست داد که موقع روبرو شدن با زن لختی که به سراغش میآمد. افکارش مقشوش شد و در نهایت اسیر عواطف گردید و با خود فکر کرد اگر با پیلار را ازدواج کرده بود مرد خانگی میشد که پایش هرگز به جنگ و و جلال ناشی از قدرت کشیده نمیشد و سنعتگری بی نامونشان باقی می ماند. یعنی حیوانی شاد و خوشبخت. با این خیالات آن حالت رخوتی به او دست داد که در پیشگویی در نظر نگرفته شده بود و صبحانه را برایش زهرمار کرد. در ساعت هفت صبح وقتی سرهنگ جرینلدو مارکز به همراه ادهی از افسران شورشی برای بردن او آمد، سرهنگ اورلیان و را ساکتتر و مقمومتر و منزویتر از همیشه دید. ارسولا سعی کرد پتوی دیگری را روی دوش او بیاندازد و در گوش او گفت وقتی دولت تو رو این شکلی ببینه چه فکری میکنه؟ حتما میگن تو به این خاطر تسلیم شدی که دیگه حتی پول نداشتی که برای خودت یه شنل بخری اما او این حرف اورسولا را قبول نداشت و موقع خروج از خانه به او اجازه داد تا کلاه کهنه پدرش خوزار کادیو بوئندیا را به سر او بگذارد اورسولا گفت قول قول بده اگه احساس کردی ساعت آخر زندگیت سر رسیده به مادرت فکر کنی او به نشانه سوگند کف دست خود را با انگشتان از هم باز کرده بلند کرد و نگاه دوری به او انداخت و از در خانه بیرون رفت این خارج شدن او از خانه همزمان بود با هیاهو و ناسزاهای مردمی که در خیابان جمع شده بودند فهمید تا زمانی که ماکنده را ترک نکرده اهانتها ادامه خواهد داشت ارسولا چفت پشت در را انداخت و تصمیم گرفت تا پایان عمر آن را باز نکند. به خودش گفت اونقدر اینجا میمونیم تا بپوسیم. تو این خونه بدون مرد ما به خاکستر تبدیل میشیم. ولی به این مردم نمک نشناس این فرصت را نمیدیم که اونو ببینن. بعد سراسر صبح را گوشه نشست و در خاطرات خود به دنبال یادگاری از پسرش گشت تا یادآور او باشد اما چیزی نیافت مراسم در فاصله پانزده مایلی ماکوندو در زمین وسیع و زیر درخت گردوی تنومندی برگزار شد که بعدها شهر نیرلاندیا در اونجا پایگذاری شد نمایندگان ازامی دولت و حزب و همینطور نمایندگان شورشیان که اسلحه خود را زمین گذاشته و آماده امضای صلح بودند مرد استقبال عدهای بچه مدرسهی با بلوزهای سفید قرار گرفتند آنها با هورا های خودشان انگار دسته از کبوتران سفید را تشکیل می دادند که از باران وحشت کرده و در حال پرکشیدن هستند در این موقع سرهنگ آرلیان و بوئندیا سوار بر قاطری گلالود به آنجا رسید. صورتش اصلاح نشده بود و از درد زخمهای زیر بغلش بیشتر در عذاب بود تا رنج شکست رؤیاهایش. احساس می کرد که به آخر امیدهایش رسیده و دیگر از آن اقتدار و جلال و شکوه خبری نبود. طبق دستور سریح خودش، نه از موزیک مارش نظامی استفاده شد، نه از آتشبازی و هورا پیروزی و نه از هر گونه تظاهراتی که به تواند چهره ماتنگونه متارکه جنگ را دگرگون کند. عکسی را که یک عکاس سیار توانسته بود از او بیاندازد و برای آیندگان حفظش کند، پیش از ظاهر کردن نگاتیو آن را از بین بردند. مراسم فقط آن اندازه طول کشید که بتوان توافق نامه ها را امضا و تبادل کرد. نمایندگان هر دو طرف در چادر رنگ رفته و وصل پینداری که به یک سیرک تعلق داشت، دور میزی چوبی و زوار در رفته نشسته بودند. ادهی از افسرانی که هنوز به سرهنگ آرلیان و بندیا وفادار مانده بودند، دور میز دیگری نشستند. نماینده ویژه رئیس جمهور سعی می کرد قبل از امضای پیمان نامه متن تسلیم نامه قوای شورشی را با صدای بلند بخواند. سرهنگ آرلییان بویندیا با این کار مخالفت کرد و حین آماده شدن برای امزا به او گفت بهتره با این فرمالیته وقتمون وقتمونو تلف نکنیم. بعد به اینکه متن پیمان نامه ها را بخواند، خواست که آنها را امضا کند، که یکی از افسران او سکوت آور حاکم بر چادر را شکست و گفت جناب سرهنگ خواهش میکنیم حداقل حد لطف کنین و اولین کسی نباشین که پیمان نامر را امضا میکنه سرهنگ اورلیانو بوئندا این توصیه را پذیرفت مدارک برای امضا شدن دور میز چرخید چنان سکوتی در چادر حاکم بود که صدای حرکت نک قلم بر روی کاغذ به خوبی شنیده میشد. بالای کاغذ ها هنوز خالی بود و سرهنگ آرلیان و بو اندیا هم آماده می شد تا همون قسمت خالی را امضا کند که یکی دیگر از افسران به او گفت گفتگرم سرهنگ، هنوزم برای انصراف فرصت هست. سرهنگ آرلیان و بندیا به اینکه تغییری در چهرش دیده شود اولین نسخه را امضا کرد. هنوز به امضای آخرین نسخه نرسیده بود که یک سرهنگ شورشی در حالی که افسار قاطری را با دو جعبه چوبی در دست داشت جلوی ورودی چادر ظاهر شد برخلاف جوان بودنش نگاهی خشک و چهرهی صبور داشت او خزاندار گنجینه نیروهای شورشی در منطقه ماکنده بود و سفر پرزحمت شش روزه ای را متحمل شده بود آن قاطر گرسنه و روبه مرگ را با خودش کشیده بود تا به موقع به آنجا برسد جبه ها را از پشت قاطر پایین آورد در آنها را باز کرد و هفتاد و دو شمش طلا را روی میز چید هیچ کدامشان چون این ای ندیده بودند در هرج هر مرج سال گذشته که قوای مرکزی شورشی از هم پاشیده بود و انقلاب دست خوش رقابت خونین رهبران رقیب واقع شد هیچ کس حاضر نبود مسئولیتی به عهده بگیرد در همین بحبوه بود که انقلابیون تلاهای خود را زوب کردند و به شمشهایی تبدیل کردند که در لایه از گل پخته و به صورت آجر درآمده بود و بدون کنترل باقی مانده بود. حالا با چیده شدن آنها روی میز سرهنگ آرلیان بوئندیا بین که به کسی مجال اعتراض بدهد هفتاد و دو شمش طلا را هم جزو تعهدات پیمان نامه منظور کرد و به جلسه پایان داد او حتی اجازه سخنرانی را هم به کسی نداد سرهنگ جوان ژولیده و کثیف در مقابل او ایستاد و با قیافهای آرام و با چشمان و اصلی رنگ خود به او نگاه کرد سرهنگ آورلیان بوئندیا پرسید چیز دیگه ای میخوای؟ سرهنگ جوان با غیافه جدی گفت بله قربان لطفا رسید بدید سرهنگ آرلیان بو با, با دست خط خودش یک برگر رسید بابت آن هفتاد داد و دوشمش نوشت و به دست او داد. بعد هم لیوان لیموناد و تک بیسکویتی را که شاگردان مدرسه دور میگرداندند خورد و به چادری که برای استراحت او در کنار چادر اصلی برپا کرده بودند رفت. پیراهنش را در آورد و لبه تخت خواب سفری نشست. درست؟ سر ساعت سه و پانزده دقیقه بعد از ظهر اصلحه کمری خود را آماده کرد و لوله آن را بر مرکز دایره بنفش رنگی قرار داد که دکترش با پمبه به بیاد روی سینهش کشیده بود و شلیک کرد درست در همان لحظه اورسولا در آشپزخانه با تعجب قابلمه شیر را از روی اجاق برداشت تا ببیند چرا جوش نمی آید. و دید که قابلمه به جای شیر مملو از است که در هم میلولند با دیدن آن فریاد کشید اونا پسرم و اولیانا رو کشتم از پنجره به حیات نگاه کرد و خوزارکادی و بوئندیا را دید که خیس و غمگین و به مراتب پیرتر از زمان مرگش زیر درخت بلوط نشسته بود ارسلا به او گفت اونا پسر از پشت زدن، هیچ کدوم اونقدر مرد نبودن که لاغل چشاشو ببندن دم غروب بود که ارسولا از ورای پرده از اشک حرکت سریع حلقه های منوری را در آسمان دید و فکر کرد که آنها علائمی برای مرگ فرزندشان هستند حالا در زیر همان درخت بلوت در مقابل شوهرش نشسته بود و سرش را روی زانوهای او گذاشته و گریه میکرد کرد که دید آنها سرهنگ آرلیان و بو را در حالی که لای پتوی آلوده به خون خشک شده پیچیدند و در حالی که چشمانش باز و پر از خشم بود به داخل خانه بردند معلوم شد که خطر از بیخ گوش او رد شده گلوله از مسیر آری از خطری به درون سینه وارد و از پشت خارج شده بود طوری که دکتر به راحتی می توانست یک ریسمان آغشت به یود را از این طرف وارد کرده و از طرف دیگر درآورد. بنابر بنابراین با رضایت خاطر گفت این شاکار من بود تنها مسیری که گلوله میتونست بدون صدمه زدن از بدنت عبور کنه همین نقطه است سرهنگ اورلیانو و بو لحظه ای در اثر حیاهوی شاگردان مدرسه که دور تخت او جمع شده بودند و برای آمرزش روح او دعا می متاسف شد که چرا نتوانسته خودش را بکشد افسوس خورد که چرا همون که از قبل تصمیم داشته مطابق توصیه پیلار ترنرا که او باید مراقب دهانش باشد گلوله را در دهانش شلیک نکرده با عصبانیت به دکترش گفت اگه هنوزم قدرت داشتم دستور میدادم تیروارونت تیر نه به این خاطر که جونم نجات دادی بلکه به این خاطر که منو فریب دادی و مسخره دیگرون کردی اما ناکامی او در اقدام به خودکشی باعث شد تا کمتر از چند ساعت اعتبار از دست رفتش بازگردد مردمی که تا ساعتی پیش او را متهم به خیانت کرده بودند و میگفتند که کشورش را به اتاقی که دیوارهایش از شمش تلاست فروخته حالا با شنیدن خبر خودکشیش او را قهرمانی مقدس می‌دانستند. زمانی که از پذیرفتن نشان لیاقتی که از سوی رئیس جمهور به او اهدا شده بود امتنا کرد، حتی بدترین دشمنان و منتقدینش در اتاقش جمع شدند و خواستند تا از بهرسمیت شناختن متارکه جنگ پرهیز کند و جنگ تازه ای را علیه دولت محافظ آغاز کند. خانه او را مملو از هدایایی کردند که برای جبران فرستاده بودند او تحت تأثیر احساسات قرار گرفت و در اثر حمایت همه جانبی همرزمان سابق و برای خوشنودی خاطر آنها امکان دست زدن به جنگی تازه را رد نکرد و برعکس در یک لحظه خاص چنان شیفته ایده جنگی تازه شد که سرهنگ جرینلدو و مارکز تصور کرد او فقط منتظر یک بهانه بوده تا اعلام جنگ کند. در واقع، چون این بحثانه هم پیدا شده بود، رئیس جمهور به طور علنی از امضای لایحه پرداخت مستمری برای های سابق، اعم از آزادیخوا یا کار امتنا کرده بود. در صورتی که این لایحه قبلتر از سوی کمیسیون ویژه به تصویب رسیده و مورد تایید اعضای کنگره هم قرار گرفته بود. سرهنگ آرلیان و با با شنیدن این خبر با خشم تمام قرید و گفت این یعنی خشونت و تجاوز اون بیشارا تو سن پیری و قد چشم راه پوست میمونن تا بمیرن برای اولین بار از روی صندلی گهواری خود که ارسولا برای دوران نقاهت او آورده بود بلند شد این راه رفتن در طول و عرض اتاق مطالب تندی را که باید به رئیس جمهور مخابره شود دیکته کرد در آن تلگراف که متن آن هرگز علنی نشد او نقض اولین ماده پیمان نامه نیرلاندیا از سوی دولت را دست مایه قرار داد و تهدید کرد چنانچه وضعیت بازنشستگی نظامیان هر دو حزب در عرض دو هفته مشخص نشود جنگ خونین دیگری را علیه دولت اعلام خواهد کرد این اقدام او به ای بود که اطمینان داشت مورد حمایت رزمنده‌های حزب محافظه کار هم قرار خواهد گرفت. اما تنها واکنشی که از سوی دولت به عمل آمد، تقویت محافظان اطراف منزل او بود با این بهانه که امنیت جانی او را تقویت می کنند. از طرفی هر گونه ملاقات با او را لغو کردند. اقدامات امنیتی مشابهی را در باره سایر فرماندهان شورشی که نیاز بود بیشتر تحت نظر قرار بگیرند در سراسر کشور به اجرا گذاشتند این اقدامات چنان کارساز و موقع بود که وقتی پس از دو ماه دوران نقاحت سرهنگ آرلیان و از بستر بیماری برخاست، تمام همرزمان او یا ترور شده بودند یا در تبعید به سر می بردند و یا برای همیشه جذب جامعه شده و از کارهای دولتی برکنار شده بودند در ماه دسامبر سرهنگ آرلیان و بندیا به بهبودی کامل رسید و محل استراحت خود را ترک کرد برای آنکه به جنگ فکر نکند روی ایوان می نشست و مشغول تماشای گلهای باغچه می شد به طور شگفتآوری دستی به سر و روی خانه کشیده بود انگار که در سن پیری تازه جوانی خود را بازیافته. وقتی فهمید دیگر خطری پسرش را تهدید کند و او زنده خواهد ماند، با خود گفت: حالا میفهمند که من کی هستم. توی هیچ جای دنیا خونه دلبازتر و بهتر از این دیوون خونه وجود نداره. دستور داد همه جا را شسته و دیوارها را رنگ زده و مبلمان را عوض کنند. دستی به سروز باخچه های حیات کشیده و گلهای تازهی در آنها کاشتند و درها و پنجره ها را کاملا باز گذاشتند تا نور خیر کننده تابستان به همه جای اتاقها برسد. به دوران طولانی ازاداری برای نزدیکان از دست رفته خاتمه داد و آن های کهنه و سیاه راستن خود درآورد و به جای آنها لباس با رنگ شاد و جوان پسندانه پوشید صدای موسیقی پیانو روح نشاطاور تازهای به فضای خانه بخشید آمارانتا وقتی صدای نوای موسیقی را شنید به یاد پیتر و کرسپی افتاد خاطره روی ایوانو در کنار هم نشستنشان در ذهنش زنده شد و بوی عطر استخدوس او به مشامش رسید در عمق قلب پجموردش چینه تازه ای را حس کرد که در اثر گذشت زمان آن را جلا داده بود. اورسولا در یکی از همین بعد از ظهرها که می‌خواست اتاق پذیرایی را مرتب کند، از سربازانی که از خانه آنها محافظت می‌کردند کمک خواست و فرمانده جوانشان این اجازه را به آنها داد. اورسولا از موقعیت استفاده کرد و رفته رفته وظایف جدیدی برایشان تعیین کرد. از آنها دعوت کرد تا به آشپزخانه آمده و غذا بخورند برایشان کفش و لباس تهیه کرد و خواندن و نوشتن یادشان داد حتی زمانی که نگهبانان را از اطراف خانه اورسولا جمع کردند یکی از آنها در خانه او ماندگار شد و چند سال در آنجا خدمت کرد در شب عید سال نو جسد فرمانده جوان را که در اثر بیاعتنایی رمدیوس خوشگله نسبت به عشق او دست به خودکشی زده بود زیر پنجرهٔ اتاق خواب او پیدا کردند